فصل 36 هم. روز دهم ده ژانویه 1945 لشکر نه توپخانه ارتش آمریکا که من هم در شمار افراد آن بودم در اروپا پیاده شد ما در یک شب برفی وارد هافر شدیم سپس در زیر بادی سرد سوار بر یک کامیون شدیم و بعد از 100 کیلومتر را وارد اردوگاه لوکیستریک گردیدیم زمین اردوگاه مینگزاری شده بود و داخل چادرهای آن مثل بیرون سرد بود ما شش هفته در فرانسه بودیم و من چون زبان فرانسه می دانستم مترجم را بر عهده داشتم سپس به ریم رفتیم که به صورت مخروبهی در آمده بود و مقصد بعدی ما لخزانبورک بود اهالی این شهر با شادی و اشک شوق از ما استقبال کردند. آنگاه وارد اکسلا شاپل، اولین شهر آلمانی شدیم. ژنرال عمر برادلی به ما دستور داد که به سوی صحنه نبرد حرکت کنیم. در همین اوان مادرم نامه‌ای برایم نوشت که در آن گفته بود شوهرش آرتور دی به چینه جدید رفته. مادرم در نامه خود نوشته بود که بسیار تنها است و دیگر قادر به تحمل سنگینی بار زندگی نیست. و قصد خودکشی دارد. اندکی بعد از ورود ما به شهر گوتا و تصرف این شهر، خبر مرگ پرزیدنت روزولت منتشر شد. حتی بی‌احساس‌ترین سربازان نیز بر مرگ روزولت می‌گریستند. وضع روحی من چنان خراب بود که سرانجام به استراحتگاهی در پشت جبهه منتقل شدم و بعد دوباره به زندگی پردردغدغه و بی استراحت جبهه بازگشتم. یک روز شاهد مرگ یکی از دوستانم بودم، نفهمیدم چه موقع گلوله به او اصابت کرد، فقط ناگهان متوجه شدم که از های فراوان سینش خون می ریزد. حالا دیگر بیش از هر موقع مشروب می خوردم. این کار فقط گرم ترم می کرد، در همان حال به سوی برلند پیش می رندیم. به من دو هفته ما رخصی دادند و این دو هفته را تا آنجا که میتوانستم در نیز صرف خوشگذرانی کردم. ما غالبا به خود می میگفتیم شاید این آخرین روزهای زندگی من باشد. و بعد بار دیگر به جبه بازگشتیم تا اینکه روز هشتم ماه مهه 1945 وارد هلند شدیم و دیدیم که مردم از شادی پیروزی میرخصیدند. ما هم رخصیدیم و نوشیدیم و دختران زیبا را بوسیدیم. جنگ به پایان رسید و روز دوم فوریه 1946 مرخص شدیم. استان را وادار کردم با من به هالیوود بیاید. او اکنون آهنگساز چندین ایستگاه رادیو و تلویزیون است. پدرم از سال 1941 سرگرم طرح سناریای موسیو وردو شده بود. طرح اصلی این داستان از اورسون ولز بود. ولی پدرم هرگز به طور کامل از طرح ویلز استفاده نکرد در آغاز دوستانش اخیده داشتند که نمیتوان این داستان را به صورت کمدی درآورد. این فیلم هم فریاد پدرم بود بر علیه فشارها و تعدیات ناشی از جنگ و کشتارهای بیرحمانی آن پدرم در این فیلم وحشت خود را از خشونت نیز نمایانده بود من هنگامی که در جبهه بودم یک پرچم آلمان و یک شمشیر و یک خنجر برای پدرم فرستادم بعدها او این اشیا را به من پس داد و گفت پسرم تو باعث افتخار من هستی ولی نمیخواهم این چیزها را نگاه دارم موقعی که من از جنگ برگشتم سناریوی موسیو وردو به پایان رسیده بود او غالبا درباره قهرمان این فیلم می گفت چطور این مرد میتواند این جور از روی دقت زنان را به دام اندازد و آنها را تکه تکه کند و در بخاری بسوزاند و در همان حال که دود سیاهی از بخاری برمیخیزد به مراقبت از گلها مشغول شود؟ او مارتاری را برای ایفای نقش زن فیلم خود انتخاب کرده بود. این اولین بار بود که پدرم یکی از هنر هالیوود را به عنوان همکار انتخاب میکرد و این حادثه جالبی هم به وجود آورد مارتا در کارتیل لاتن نیویورک اقامت داشت و پدرم به او تلفن کرد و گفت من چارلی چاپلین ولی مارتا که فکر میکرد قصد شوخی با او را دارند گوشی را پس از گفتن ای که تعجب او را میرساند زمین گذاشت ولی به او اطلاع دادند که خود چاپلین به او تلفن کرده است مارتا با نهایت خوشحالی پیشنهاد پدرم را پذیرفت او فکر میکرد که پدرم سلطان کمدی است و همکاری با او برایش افتخارآمیز بود. پدرم به مارتا پیشنهاد کرد که قبل از بازی زیاد تمرین نکند و این اولین باری بود که او یکی از هنرپیشگانش را از تمرین مداوم باز میداشت. پدرم موسیو وردو را ظرف دوازده هفته به پایان رسانید. این فیلم در آمریکا موفقیت زیادی به دست نیاورد. در ماه مه 1947، یعنی یک ماه بعد از اولین نمایش فیلم، گروهی از صاحبان سینماها از نمایش آن خودداری کردند. ولی در اروپا موسی وردو به عنوان یک شاهکار مورد استقبال قرار گرفت. به خصوص استقبال از آن در فرانسه عجیب بود. مارتا در مورد دوازده هفته‌ای که با پدرم کار کرده بود به من گفت من بسیار مفتخر هستم و فقط برای این در فیلم موسی وردو شرکت کردم که بتوانم با پدر شما همکاری کنم و این را به همه میگویم که این مدت بزرگترین تجربه زندگی من بود حالا بیست سال داشتم و از ارتش مرخص شده بودم و زندگی برایم اهمیتی حیاتی پیدا کرده بود پدرم قالبا در زنها به من بستید میگفت بسیاری از مردها راه به آوردن دل زنها را نمیدانند، باید همیشه با آنها معدب و جوان مرد بود باید با جنبه های روحی مصهورشان ساخت و بعدن همه چیز رو به راه می شود. و اما جنگ عادت بدی در من ایجاد کرده بود و آن اعتیاد به الکل بود در طول مدت جنگ شراب نوشی برای همه سربازان عادی بود یک بار من زیادتر از حد عادی مشروب خورده بودم و مرا به زندان لینکن هایز انداختند. فردای آن روز ادعای روزنامه نیویورک همراه یک پلیس برای ملاقات با من آمدند و این کار از خشم دیوانم کرد. عکاسی را که میخواست از من عکس بیاندازد تهدید کردم. ولی مأمور پلیس دستهایم را گرفت و اکاست کار خودش را کرد. چند ساعت بعد به وساطت یکی از دوستانم از زندان آزاد شدم. همان شب عکس مرا در صفحه اول یکی از روزنامه‌های مشهور چاپ کرده بودند و فردای آن روز به دیدار پدرم رفتم و او گفت بنشین اطاعت کردم او بسیار بود ولی راجع به آنچه روزنامه ها نوشته بودند چیزی نگفت و سرانجام لب به سخن گشود و گفت تو میدانی که مشروب خوردن بسیار زشته است و پدر بازروگرد در اثر افراد مرد با نامیدی گفتم میدانم که وضع وحشتناکی دارم ولی پدرم گفت اندوهگین نباش و اگر فکر میکنی کمکی از دستم برمیآید بگو به دنبال این جریان مشروب خاری را ترک کردم یکی از مسائل عجیبی است که پدرم را کمونیست قلم داد کردند. در حالی که او یکی از دوستانش را که عقاید سوسیالیستی متعادلی دارد بارها سرزنش کرده است علاوه بر این پدرم به آمریکا و قوانین و مردم آن علاقه وافر داشت از نظر سیاسی میتوان او را یک نفر فکر و ایدئالیست دانست از این گذشته هیچگاه در مسائل سیاسی عقیده ثابتی نداشت فقط کنجکاوی او نسبت به مسائل و اشخاص گاهی ایجاده ناراحتی میکرد هنگامی که کمیته تشکیل شد تا راجع به عقاید ضد آمریکایی تحقیق کند پدرم را به خاطر نطخی که در سال 1942 ایراد کرده بود و خواستار افتتاح جبه دوم شده بود به بازپرسی کشیدند. ولی اتخام پدرم در ایراد این نطخ شدید نبود. چون روسیه در آن هنگام متحد آمریکا به شمار می رفت. در سال 1945 یکی از سناتورها پدرم را بیگانی که اخلاق غیر قابل تحمل دارد توصیف نمود. در سال 1946 حادثگی دیگری روی داد و کانستانتین سیمونوف شاعر روز که به هالیوود آمده بود به دیدار پدرم رفت و همین ملاقات با یک شاعر روز کافی بود تا بسیاری پدرم را کمونیست به حساب آورند. پدرم در مورد ملاقات با سیمونوف حاضر نشد هیچ توضیحی به کمیسیون تحقیق بدهد. پدرم همیشه عقیده را در مورد دموکراسی چونین بیان می کرد. سرزمین دموکراسی محلی است که میتوان در آن عقاید خود را آزادانه ابراز نمود. پدرم در یک سخنرانی که در جواب مخالفین خود ایراد کرد، مطالبی گفت که خشم آنها را بیشتر برانگیخت. در سال 1947 یکی از سناتورها در برنامه فرستنده NBC اعلام داشت که پدرم یک کمونیست و یک دروغگو است. پدرم فوراً درخواست 3 میلیون دلار قرامت کرد. ولی تمام این ماجره ها باعث می شد که او را بیشتر متمایل به کمونیسم بدانند. در ماه مارس 1949 اونا آن فرزند خود را به دنیا آورد. در آوریل 1949 پدرم بیانیه کنگره صلح جهانی را امضا کرد و بدین ترتیب تهمت بیشتری را بر خود پذیرفت ولی حقیقت این بود که او فقط شیفته صلح جهانی بود. در آغاز سال 1951 کمیته تحقیق درباره فعالیت های زد آمریکایی بار دیگر پدرم را به تحقیق کشید عدعا زیادی از هنرپیگان هالیوود نیز مثل پدرم گرفتار تحقیق شدند و گروهی از آنها مثل پدرم مزنون اعلام گشتند جوزف مکارتی بیرحمانه به جان همه افتاده بود پدرم با شجاعت از حقوق انسانی دفاع کرد. اون نمی توانست. عقایدش را در دل خود خفه سازد. این نبرد برایش گران تمام شد. موقعی که من به هالیوود برگشتم تا نقشی در فیلم لایم لایت بر متوجه شدم که در داخل منزل ما دیگر امنیتی وجود ندارد. خیلی ها می ترسیدند به منزل ما بیایند. هیچ کس حاضر نبود برای بازی تنیس به منزل ما بیاید. همه جا خاموش و خلوت بود پدرم در آن موقع مرد تنهای هالیوود بود و در همین حال روی لایملایت کار میکرد و این افسانه دلغکی بود که بعد از دوران زودگذر شهرت به گرداب فلاکت و فراموشی افتاده بود روز چهار اوت 1952 لایملایت به طور خصوصی برای دویست نفر نمایش داده شد کسانی چون داوید سلزنیک و همفری بوگارد دعوت پدرم را پذیرفتند. پدرم در پایان سخنان کوتاهش خطاب به حاضرین گفت: می‌خواهم از شما تشکر کنم. ولی زنی از میان جم فریاد زد: نه، نه، این ما هستیم که باید از شما تشکر کنیم. پدرم در همین حال با اونا طرح مسافرت به اروپا را می ریخت ولی نمیخواست آمریکا را ترک گوید. اونا اروپا را ندیده بود و به این مسافرت علاقه بسیار داشت. و پدرم نمیخواست خلاف میل او کاری انجام دهد. شب قبل از عظیمتان ها تایم داران زیافتی برپا ساخت که در آن پنجاه نفر شرکت داشتند که از آن جمله مارلون براندا بود. در مدت زیافت چندین بار آرتور روبینشتاین پیانیست بزرگ هنر نمایی کرد. پدرم هم هنرنمایی نمایی فراوان نمود ولی چنان غمگین بود که این اندوه خود را به دیگران نیز منتقل ساخت. این میهمانی و رقص پدرم با یکی از رقاصان مشهور آواز قوی او در شهری بود که میخواست آن را شاید برای همیشه ترک گوید فردای آن روز تایم پدرم و اونا و چهار فرزند آنها را به ایستگاه لس برد. پدرم در میان راه ناگهان به سوی تایم برگشت و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت احساس میکنم که دیگر به آمریکا باز نخواهم گشت آن وقت با همه چیز و با زندگیش در آمریکا و با این کشور ودا کرد پدرم در هنگام اقامت در اروپا گهگاه نظریات تلخی در مورد آمریکا اظهار می داشت سرانجام در سال 1958 منازعه میان پدرم و حکومت آمریکا پایان پذیرفت و هنگامی که به پدرم اجازه داده شد که در صورت تمایل به آمریکا بازگردد او احساس کرد که دیگر مایل به این کار نیست و فکر میکنم ها از اینکه یک مالیات دنده خوب را از دست دادند متاسفند. فصل سی و من و سید که با هم فیلمی در آلمان تهیه میکردیم در سال 1955 به دویی برای دیدار پدرم مسافرت نمودیم. موقعی که به پدرم تلفن کردم احساس نمودم آفلی گیر شده است و گفت حتما بیا این ملاقات پنج روز بعد از دیدار او با چوهن لای بود من گفتم پدر برای چه او را به نهار دعوت کردید؟ میدانید با این کار همه دنیای انگلوس ساکسون را بر علیه خود میشورانید؟ پدرم گفت چه خط بعد و افسود من هیچ عقیده سیاسی خاصی ندارم ولی میخواستم او را بشناسم و چقدر با هوش و فهمیده بود. پدرم نسبت به همه چیز کنجکاف بود گانگسترها، نیشتین موسیقیدانها، جی فیلز و چئلای. او علاقه داشت به مسافرت برود و به توضیحات راهنمایان گوش بدهد. او مرا همراه خود به قصر شیلون برد و این همان جایی است که در سرودن زندان شیلون الهام بایرون بوده است. او به آرامی در ووی در میان چمنزارها زندگی می کرد و درختان و رنگها و صدای طبیعت پرندگان زمزمه باد و جنگل و دریاچه آرامی که اوها بر روی آن بی حرکت بودند او را احاطه کرده بودند. در صبحهای آرام صدای شلی که تفنگ شکارچیان آن حوالی شنیده می شد. پدرم از شکار و از تیرندازی متنفر بود. ولی خانه او با وجود صدای توفنگ ها برای من خیلی آرام بود پنج روز آنجا ماندم و در چهارمین روز سکوت آنجا نزدیک بود کارم به جنون بکشد سید دو هفته آنجا ماند و بعد بلافاصله به یک کلوب شبانه پناه برد تا وضع روحی خود را ترمیم کند پدرم هم بعضی اوقات اونا را به خود به پاریس و لندن می برد تا اپرا و باله ببینند و از لذات شهری متمد کردند. یک شب من و سید همراه پدرم و اونا برای صرف شام به هتل پالاس لوزان رفتیم و در اواسط شام، ادوی زیادی از دانشجویان برای دیدن پدرم هتل را محاصره کردند. صاحب هتل پیشنهاد کرد جای دیگری بنشینیم و پدرم سری تکان داد و گفت: بسیار خوب. من و سید، پدرم و اونا را در برگرفتیم تا آنها را از موج جمعیت حفظ نماییم. یک نفر به پدرم نزدیک شد و دستی به شانه او زد و گفت: اوه چارلی، احوالت چطور است؟ همه سعی می‌کردند به او نزدیک شوند، تکمه لباسش را به عنوان یادگار کندند و موقعی که به زحمت سوار اتومبیل شدیم، آنها بر روی اتومبیل دست میکفتند و چند جای آن را زخم می‌کردند، ولی پدرم از این کارها راضی بود. یک هنرپیشه به هر حال شهرت را دوست میدارد. او درباره هالیوود سوالاتی از من کرد و گفت: آنها دیگر به من علاقه ای ندارند و من هم نمیخواهم به آنجا بازگردم. حالا ادهی بچه ی قد و او را احاطه کرده بودند و او هم راه و رسم پدری را خوب فرا گرفته بود. من در 5 اوت 1958 با سوزان ماکنس و ازدواج کردم و بلافاصله تلگراف تبریکی از طرف پدرم و اونا و شش فرزند آنها دریافت کردم. نه ماه بعد مجبور شدم همسرم را طلاق بگویم. پدرم در طی نامی نصایح فراوان بدرقیه راهم هم ساخت و این نامه حاوی تشربیات وی بود که زندگی را با همه جنبه هایش دیده بود. او برگم نوشته بود، چارلی عزیز، متأسفم از اینکه نتوانستم قبلن برایت نامه‌ای بنویسم. لابد میدانی که مشغور نوشتن خاطراتم هستم. هنوز داغل یک سال دیگر برای پایان دادن آن فرصت میخوام و نوشتن این خاطرات تمام وقت مرا اشغال کرده است. نامه معدبانی از همسر تو داشتم. او به نظرم دوست داشتنی میآید. این به راستی آور است که شما نتوانستید با یکدیگر توافق کنید. کودک زیبایتان رشته محکمی است که باید شما را به هم پیوند دهد. تو بعدها خواهی یافت که انسان برای آنکه در زندگی احساس اطمینان کند به وجود کسی نیازمند است. کسی که به انسان نزدیکتر باشد. دختر تو آنقدر قشنگ است که باید برای خوشبخت ساختن او تلاش کنی. برای یک کودک هیچ چیز مهمتر از آن نیست که در کانون گرم خانوادگی زندگی کند. من هفتاد سال دارم و بسیار در اندیشه فرزندانم هستم و به تو و به زندگیت هم فکر می کنم. تو حق نداری زندگیت را ویران سازی. تو هنرمند باهوش و خوش هستی. من تو را در صحنه تئاتر دیدم و خوب میدانم که چقدر استعداد داری. من نمی خواهم این نامه را اندرسی بدانی ولی به راستی از اینکه همسرت را طلاق گفته یان دوگینم. زن تو به نظر من خیلی دوست داشتنی است. آیا از سیدنی خبری داری؟ فکر می کنم او هم موفق شود. تو هم می توانی هم او گردی برای من درباره خودت و نخشه بنویس اونا و بچه ها به تو سلام میفرستند. آنها غالبا درباره تو و دخترت صحبت می کنند و میخواهند بدانند چه می یا چرا به دیدارشان نمیایی. آنها بزرگ شدند جرالدین پانزده سال دارد می تقریبا چهارده ساله است بوزی یازده سال دارد و پگی هشت ساله است اوجین شش سال دارد جان دو ساله است و بچه کوچوی ما سه روز پیش به دنیا آمده است با دوستی هایم پدرت حدس میزنم. پدرم موقعی که درباره تکیگاه در زندگی صحبت می کند به او نظر دارد که در سخت در این دوران زندگی پدرم عشق خود را به او تقدیم می و خوشحالم که سرانجام انجام اونا را دید و با او عهد زندگی بست.